یکی دیگه از مشکلاتی که ممکن هست ما دران باردار، در دوران بارداری تجربه بکنن اختلال عمل کرده مفصل جلوی لگن یا همون سنفیز پوبیس هستش. وقتی که فاصله بین دوتا استخوان پوبیس که استخوان تشکیل دهنده مفصل سنفیز پوبیس هستن به طور غیر عادی زیاد میشه مفصل آسیب میبینه. میزان فاصله دو دوتا استخان اصلا به شدت درد و پیشاگهی اون ارتباطی نداره. این مشکل با عناوین اختلال عمل کردن سنفیز پوبیس، جدا شدگی سنفیز پوبیس و نام علمی دیستاز سنفیز پوبیس خونده میشه. علت اون هم وجود هورمون لکسین در دوران بارداری و همچنین تغییر فرم مفصل به هر دریل قبل از بارداری و یا هر دوتای ایناست. این اختلال اغلب در اواخر بارداری به خصوص موقع زایمان اتفاق می افته. و خیلی نادر هستش که 24 تا 36 ساعت پس از زایمان اتفاق بیفته. به نظر میرسه که یک دلایل اصلی بروز این اختلال یک پروسه التهابی هست نقش سنفیز پوپیس، تکمیل لگن و استخانی و انتقال وزن بالا تنه به پاها در حالت ایستاده هست مسلما هر گونه آسی به این مفصل باعث مشکلاتی در تحمل وزن میشه که بسیار هم دردناکه از اونجایی که این وضعیت به راحتی تشخیص داده نمیشه براورد میزان شویه اون هم خیلی مشکل هستش و افراد بسیار با تجربه رو میطلبه تا بتونن اختلال عملکرد سنفیز پوبیس رو تشخیص بدن مطالعات بیان کردند که متاسفانه اختلال عمل کرده سنفیز پوبیس در ده تا 15 سال اخیر افزایش پیدا کرده. علائمی که هاکی از مشکل در مفصل سنفیز پوبیس هستند عبارتند از درد در, در ناحیه پوبیس یعنی در قسمت انتهایی شکم و استخان لگن قسمت قدامی استخوان لگن مادر ابراز درد میکنه و همچنین ممکن هستش که اون ناحیه در لمس هم حساس شده باشه مادر ممکن هستش که موقع راه رفتن گشاد و اردکیوار راه بره صدای کلیک کلیک در ناحیه مفصل سنفیز پوبیس در هنگام راه رفتن به گوش برسه درد و سختی در ناحیه مفصل پوبیس به خصوص در هنگام قرض زدن در رخت خواب مادر ذکر میکنه که درد و ناراحتی در انجام فعالیت های مثل بالا و پایین رفتن از پله ها سوار و پیاده شدن از ماشین نشستن و برخاستن ایستادن روی یک پا پوشیدن شلوار بستن کفش و بلند کردن اجسام داره درد سیوتیکی رو هم ممکنه مادر تجربه بکنه. دردی که در ناحیه با سن وجود داره و به پاهاش انتشار پیدا میکنه. میگه موقع بلند شدن از رخت خواب مشکل داره. احساس در رفتن لگن رو داره و احساس میکنی که پایش سر جا در لگن قرار نگرفته. عملکرد مسان ممکن هست که با اختلال مواجه شده باشه و مادر ذکر بکنه که باید تونتون بره دستشویی و با تغییر دادن پوزیشنش دوچاره بی اختیاری ادرار میشه در در دیگه مانند زانوها در ناحیه قسمت پایینی شکم و همچنین ممکن هستش که در در ناحیه کمر هم وجود داشته باشه